رسول الله و آده قیلین و طاهرین و محسومین و در تدارم و انداره مجمعین و محسومین و که در قدس الله سره راجع به مسئله معیار در اغوبه زکیشون او که پرفاری که با تأویرشان حقیق قرمت مولا و ظلم و مولا شد و تحریری و تغییر خود اون یا حقوقی و خودمون اقرائه شد همان من که از اینکه واسه این سه بحث ها که ریشه یاوی بشه مسائل مثل مسائل مثل حتی مواهد صحیح خاصی ها در حصول این صحیح مواهدی سید که لابود یعنی این ما باید در مواهد صوری این داشته باشه. و الان اخیران صحیح شده که تبدیل به مثلا ما یه بحث رو ادام بیدیم ادام بیدیم جرد کنیم غیر از بحث اصول بحث اصول بخص اصول یعنی اون زیربناها اون اساس تفکرات اصولی و زیربناهاش رو بیاندید به نظر من چنده ها مطلب هر از به نظر ما شون اصولی علم اعتباری نیازی به تحصیص علم جدید نیست همون مساله دوره که دو موانوان تلسفه اصول منظر با کنه اصولی مشکل نداره احتیاج نداره که ما یه علم دیگری مثلا برای او قرار بذیم احتیاج ما درشون علم اعتباری سی علوم اعتباری آقل توسن مشکل دست مثل پس این که موضوعش بدن انسانه ما نمیتونیم از بدن انسان بریم مثلا رو بدن خبوشونه کار رو کنیم خب؟ هیوان میشه یا نشانسی میشه دکتره هیوان میشه موضوع برد از... اما در علوم اعتباری طبیعتش اینطوره، طور در ما راجع به نقلی که صحبه کردیم ممکن است به همین اعراب و یعنی یه هر صحبت از راجع به تاریخ مثلاً لغت صحبت رو کنیم که مثلا این این اعراب در چه جامعه شکل گرفته چون این جامعه عربی هم جایی مختلفی داشت آیا تمام جامعه عربی اعراب داشتن نداشت؟ خب این بسیار به ذهن بیاد که برکی به نفر نداره چون نفر شما بگیم مثلا پای مرگوه اون بزار مرگوه یکی اما انصافش مشکل نه حس نه بکنیم احتیاج به یک علم دراغانه ای که به عنوان از نه باشه یا در اصطلاح که برد شد اول خیلی مدون نبود اصول علم نه مثل حصول فرق یا حصول نه هم درست کردن که این کتاب جرال سیوکی در این بارز علا اختراف یا علم نه من راسته به قبل برد خیلی به قبل اما به صوره به اگه عکس می تره شواهد درست مثلا این کتابو رویشون نوشته در آوری و اصول نه که یه نه خب می خرمه اصول نه رو تو قدرت بررسی کرد خیلی مشکل خاصی نداره این طور میشه احتیاج اصولش به علم دیگه این یک مطلب در ذهن های این چه تحلیلی رو که ما روز هر کردیم این یه بحثی نیست که ساده باشه این پروسه تصوری که علمای ما اصولی ما در خیلی زمان های مختلف داشت. این نحری استزهار رو داشتن و طبیعتا نحری استزهار خیلی تاثیر داره نزیر بناها در اون نتیجه استزهار خیلی موثره خود درست کنه مثلا فرسی یه مثال بودم مسئله اشتماع از این مسئله قنبازه بشه مسئله اجتماع اون رو مثلا که اگر مثلا نماز در لباس پس بی خون تا یه نمادش در رسیانه خم آمدن از همان اول گفتن نه آده میشه نماد اگه خون اینا حالا چون توضیح داده نشده درن و مثلا که نگاه میکنه پس مثلا کلمات ابن حض اون در توضیح مطل کلمات ابن حض پاس اون سال چهار سال پنجر خیلی خبریشون مطلب مطلب رکتن پس اون شارع اصلا پیرگماهتی مثل, پی، پیر مثل هر و حتی من از فرمی تفکر در بعض به ما هم محدود میشه که از حال ما در وقت نه نگویفرد حالا من توش ما برای اولین بار بمروه و تمثل کرد خلاصه اون تمثل که اینه که بخش اشتماع نه تا به دلالت لفظیه تحلیل این بود و در این دلالت لفظی اینجور میفتیده اگر ما جایی هم و جایی هم نه داشتیم نه همیشه بسید با قلعه هم انقلالی سرایان داره شمول داره نیمیزاری هم رو اون اونجا هم نه تنها میاد امر رو نمیاد حالا اینشاءالله که آزد درمتون باشه اساس برس اجتماعان نه این است که همانه نه دو باشن اصلا اونایی یه اساس رو میزن میگن اگر گفت لا هر قامونی اگر بخلا تحصد از اون طرح هم بخیه. مثلا نماز بخون سنده طبیعتا اینجوریه سنده نمیاد اون نماز در خالقه در زمین قصی رو بگیره اسلام نداره اما دا داره تحصد اسلام و شمول به سردان داره میاد اون قصی که در زنده شنم نماز میگیره. این یه اون تحلیل بارمی سود دفت کرده من برای شما تحلیل های مختلف و عرض مثلا در دنیای اسلام در این 1400 سال این یه تحلیل خلاصی تحلیل هر جا نهی باشه هر جا امر باشه تر به نه همیشه مقدّره نه جای امر در جا متأمریه اما امر نمیاد این یه تفکر لذا در این تفکر که دنبال اون واقعه خاصی مثلا اینجا برای نمونه اول این بحثه که ما در حسول متحصیلی ما مطرح کرده که این قبل هم تو حسول ما آنین ما اومده قبل به شما ما اون وقت اون اول رو الان فیلن یک خمسیز واز اونم برمیگردن با ببینید الان در بین حسولی ما این شده که اگر بین حمرو نهدید موقع لعنوزن متعلق هم نهد ترکیبش اتحادی باشه اونجا دلالت در دلال امتران خای ترکیبش انجام باشه اصلا مورد اشوان نیست. مثلا در حال نماز نگاه کردن برجندیه. میگن این بطر نماز نمیاد. اصطلاحا حرمت نظر با بازسلر رفته ندارن این نفر با همکی جنبشون کرده جنبش چون نبود. چون چی؟ چون و خاصیت نماز نداره. لذا اگر انجام نظر در حال حاضر. این چون ربطی نداره اصطلاحی بودشتن بسیاره متذکره به آنسان ماهی و دیگه ها اینجا ترکیب انضمامیه اگر ترکیب انضمامی شد اصلاحی اینجا اصطلاحی نهیم درست نماز درسته نحیم صلاحی هست درست شد اما اگر نماز در لباس خصوی شد اینجا میگن ترکیب اتحادیه اصطلاحا نمیتون در ترکیب اتحادی محل وقتی یا نشیم امتنا باشیم مثلا فرمون اصلاب به امتناب شد در ترکیب اتحادی یه اصطلاحی تو در آن که در ترکیب اتحادی قائل به مسئله اجتماعی نمیشیم یا اجتماعی امتنا اما در ترکیب امتنابی ربطی نداره اوچند رو اون هست اینجور گفتند مثل نظر کردن و از در حال نماز ترکیب امتنابیست ترسیدان نماز درسته اصلا مثل نماز در لباس قصبی ترکیب اتحادی است چون همین که رکوب میکنه بلند میشه در لباس قصر میشه حقیقت رکوب هم همه مراد از ترکیب اتحادی یعنی یک عمل وقدانی حقیقی واحد خارجی دو تا عنوان برایش بار باشه این مراد این ترکیب اتحادی است یک عمل واحد مثلی که من اینجا که نشستم شخص وادلی هستم دو تا عنوان برای من آمده. تخت و سر پستم و فوق الارم یکی هم برمجرد. من در که تخت و سر پستم فوق الارم هیچ تأثیر نداریم تحقیق و قویق تعدد ایجاد لذا ترکیب اتحاده نی. یک عمل بقدانی واقع تغییری واقعا در خارج یکی لکه دو تا عنوان داره هم عنوان لا سر بشورده هم عنوان سنه بشورده اینو بشنگم تحقیب تحادی من یه بخصی هم هست که مثلا بید جنسو هست تحقیب تحادیز و انزماویست آزی های جور پرمدست منونانیه جور و استاد هم پید آزیز منونانیه که آیا اون بخصی تحقیبش هم حاضر به خودش من نمو باید بخصش اون وقت اینجور آدم گفتم خوب دقت بکنیم یک در مثل نماز برجنبیه تحقیب انزماویست این اصلا خارج. دو در مثل نماز در لباس قطعی ترکیب اتحادی است سه در مثل نماز در مکان قطعی دقیقی فهم بزن با لباس و مرمان اینجا کیوی شده هست ازده از آن گفتن ترکیب اتحادی است جای اما نبیه اجتماع نبیه مرمان گفتاد بسانی نم مثلا رکو رکو رکیب به مکان ندارد یا که این اناییز بروردن بزنیش اگر در زمینه قصی روح او کرد روستی نظر باید نبیه کرده رفتی به ماهیت روح نداره سر از روح او بلند میکنه این رفتی به ماهیت قص نداره ذکر نگیره ذکر نبتی به ماهیت قص نداره نه میان خود قیام به تصرف نیست یعنی یک تصرف زائبی نیست یک چیزی نیست لذا مرموم استاد معتقدن که ترکیب شون فقط در حال سجزه هسته توضیه ها در بحث اجتماعان هم چند بارم عرض کردن توضیه هم داره ممنوعیشون فقط در حال سجزه چرا خب؟ چون در حال سجزه سجزه یعنی پیشانی رو زمین گذاشتن یعنی زمین نه فقط برسر زمین فشار بریم این پیشانی گذاشتن از روش سجزه این خود این تصفاقه قصدیه خب خودمو بک پس ترکیب اتحادی ایشون در خصوص سجده خواهده بقیه نماز ترکیب اتحادی نداره انضمان میبیندن در از چیزی بست پیشون ما پیشون من در نماز نهیت باشه نمازی درسته خواهده چون سجده نداره یا <laughs> اگر انسان موضوع تر ایسی ای که سجده بکنه این نمازی شده چون ایشون چی میگن؟ کجا سراب بکنه. هر کی به اعتقادی اونجا پیدا میشه خب دقیق تصور کردیم اون و رو باعث نماز نه میدونم به که هم عمل باشه بحث دیگه‌ایه اکثر میکنه روشن شد شد و مثلا بحث دیگری که خیلی مهمه وضوء از اناء قصبی ذرق قصوی آب مباح آب آب وضو شما ذرق خب از مشهور فوقهای قدیم گفتن نه روزو باطله این آمین ما تحصیل ما آمدن گفتن نه چرا ها چون ترکیب شنیده قرمی نیست سه شب اینه در وقتی که شما دست میزهیم که آب بردانی این تصرف در اناه هست این قبول اما این روزو نیست آبی که مخاییم برداری این تصرف در اناه هست شما در زر تصرف اما این روزو نیست دستون که بیزار شده از زرب به صورتون این وضوع هست اما تسابقی روشن انایی شما وقتی میبین به صورتتون آب میزنید این وضوع هست اما دیگه این تسابقی لره زرب نیست یعنی از که تحلیلی که اصولین متحکر ما زاده من میخوام سید تحلیلی ها براتون روشن بشه که چجوری به نتایج برسید سری که در دل... تحلیلی که اصولی مترسلشیه تو اجتماعونه باید ترکیب اتحادی باشه اگر ترکیب انزمانی بود فایده نداره. اونجا عمل درسته ساسه رفتی بست اجتماعانون نداده لذا مرمون استاد و ادرهی گفتن وضوع از اناع غصبی از زرف غصبی که آبش مباه باشه ملک خودتونه این گفتن درسته باید خب مشروع قادر این که وضوع باطله از انا باشه. باطله قیل از وضوع از انا زهب و فضله باز اون بحث دیگر داره اون نبخوا بازه بحثون میشه اشکال این آران در این که وضوع میگن اجتماع هم نه. اشکال که خیلی واضحه بگن شما دست توی زهب بگن که آب برداری این تسبب تو انا بلایش کن لیکن این وضوع نیست آب برداشتن شما که نیست. میاریم بالا رو سراغشون میریم. این وجوه، اما این تصور در انامی اتحادیه میگه اجتماع نه در اتحادیه، ادماهن ات بته اجتماع در اتحادیه. هر گر ترکیب، بله آم. چونش کرد. ترکیب چرا؟ به در وجوه گرفتن ما قدرتی هر آم بود در دو دو زمانه باشه دو تا زمان باشه لكن چون ارکباب دار ده آب را از اون نفع داشه به لازم مقدمه حرام که مقدمش حرامه با خود عمل وضو ترکیب نداره روشن شد خاصنا رو نگاه این من اجباران عرض کردم حالا برگردم برمی ارخرا یک تحلیل در مقالات اجتماعی می هست خلاصی اون تحلیلی که از مثال بارزش خاص این حال در محلا غیر محلا در با اصولیش و از کردم این مطلب از بعض روایات ما استفاده میشه که هیچ یکی از عصا ما قدیمی و حدیثی و توجیه نشده به نظر ما این مطلب عین این مطلب از ما نمیاد این خلاصش اینه خلاصه اون مطلب اینه هر جا ما نهی داشتیم و با یک نحوی بخواد با این عمل ارتباض بکنه نه موثر هست اما موثر اینو دلالت لهجی گیرسه هر مثلا واسه این صله و لا تطهر همین که داخل این لا تطهر خلاصش بکنه تحلیل بکنه خود لا تطهر که قابل لاتوسن بدی خود لا تطهر تو چیه صله نه قابل نماز بخونی ولو در زمین حفیث اما روی لا تطهر قابل قرض نکن ولو به نظر سلافی کعامل درست چون لاتفت یعنی تو زمین قسطی نخواب خب لاتفت این چی؟ زمین قسطی رو نخوش تو زمین قسطی نخواب تو زمین قسطی نماد نخواب تعمالون تو خود لاتفت خوابه حالا یه تحقیم ما باقیم به حصول روز سمه اطلاق نداره لاتفت رو بگیره اما لاتفت اطلاق داره سمه داره بیگره. و این تفکر همین اضراری که ایشون فرمودند بنابراین این تفکر ما اصولا هر جا نعدی داشتیم این تفکر اینجور تفسیر بکنیم یک تفسیر لفظی هر جا لا تصلب داشتید به حسب فهم و عرفی از لا تصلب می‌فهمیم نماز نکنم تو ذیل نقصی دو تفسیر قانونی هر جا ما در یک مادر قانونی نعدی نه قبیه اصلا میره حتی مبارده هم را میگیره او را غیر مشروعش می کنه اصلا بگیم این یه قانونه قانون دو سو تفسیر اما در کلمات از نه تفسیر اول میشتره هست و اگر این آمد دیگه این کار مثل نه هرز و کسی که این را رفتن از که این دوست مثلا گلاد لات, لات حلب سر هری، هری نبود. این یه لات حلب سر هری معناش اینه، یعنی هری بگوشه بیرون بیم، هری بگوشه بیشه رفاه بیم، هری بگوشه سوار عرض بشی هری بگوشه اداره بیم، هری بگی نماز بکنی. این لات حلب سر هری، اصلا لا لات حلب اینه. پس وقتی تا حلب سر هری خابیده، اون لبخن هری در حال نماز. پروژه کی مطلب پروژه خب یه نو من ارسل میام قرین و قرین اون وقت قنا این خوب دقت بفرمایید فرض که ترکیب اختیاری باشه یا اجباری هست با باشه به اون اینا وقت ترکیب نباشه ایشون میگه اگر از قرصی گرفت باطل. ابن میگه از انای خاصی گرفت گیر باسه خوب بفرمایید میگه از چون وقتی میگه انار غزی رو به کار نبر یعنی چی؟ یعنی باش آب نخور خرید و فروش نکن تو خونت نگذار غزیه دیگه باش روزو نگذیر اصلا معنایش اینه اصلا معنای لا تقصد در انار قصبی، اصلا معناش اینه این لا تقصد چنایه از تصرفات شباها آقاردن توش هست هبه توش هست مثلا اناه قرصی رو به کسی نبروش این معنی شده اناه قرصی دیگه سر بیشن مثلا متکار میشه خوابی نمیشه اناه قرصیه دیگه اناه قرصی به ایش موضوع بگیدی اونم نمیشه اون روشن این تحریری چی باید بگید طبق این تحلیل یک تحریری لغوییست طبق این تحلیل لغوی میگه ما به نظر تحن و غرفی کار به ارتخاط نداری ا اروفا آن وقتی میگه توی اناعه غصبی تصورت نکن این یعنی چی؟ توی اناعه غصبی تصورت نکن به چی میگه برمده؟ برای یکی شان بسو گرفتن دیگه نرفت این زاویه بحث عرض شده دیگه نرفت روی رو ترکیب و ترکیب انضباهی، ترکیب اتحادی اصلا دنبال این بحث نرست اونها سنن موضوعی هرسه. اما ما شما نمیذ، علاقم، من کیو آب رسنه موضوع میگم، تزعوق بشه. در اینانی. چرا؟ یه اونا خار ببین، به لغتی است و التهابینه ارهاش. عرض گیرم حالا پس که اینا رو از بالا بذید از آب این تزعوق نه، این آب گذار شد، این تزعوق در چه دیکر गोष्ट اینه که شما مثلا تو امثال معانم و مخصوصا بعد از اینکه این منطقه اروپایی به اصطلاح غربی ترجمه شد در اختیار مسلمان ها قرار گرفت که اقسام دلالت هم شد سه تا مطابق و دام تصنفر دیگه را شما اختیار دارید که آیا آیه مثلا ابن حمد شما میگی لا حسب الاناء لا تصرف الاناء نه نهائا هست این معناشضیت این بشین دلاش ممسابق است از زمان یک شروع بختتر این. مثلا گفتن اگر امره بشه شد یک شد واجب شد مقدمش واجبه اینا در ذهنیت شما این دارت دراس عرفید و هم سال عفی روشن اگر گفت نرهتر منناش اینکه بازار برو پس بازار دوره باز سوار ماشین بشه معناش که بار سوار ماشین بهو برو. یعنی می گفتن قرش اینه میفهمه توی معالم هم ملاحظه فرمودید که آمدن بحث کردن که آیا این چه نحوه اگه دلالتی متابقه است، تزنبانه، ارتضا می شکرون نیست چطور میشه اون بحث پس یه بحثی که اصولاً آمد یه بحث لحظی بود همین مقاضی که الان شما به در ملازمات حقیلی نوشتن که الان دیگه در اصول ما اینا که جوز ملازمات حقیلی خارج کلا این در معیمت وقت همون اجتماع همون نه به ذهن شما این طرمیات این در حیثم بود این یک تحقیل خوب دقیق بفرمون چون بگه نه همه بر میداره نمیستونه ام با کنه بشهی که خودش نه میداره خواهمی نمیستونه تا نه آمد نمیستونه عقل اصلاق اصلاق به سوشه هست نما اطلا کنم بگیره دمارد. ها شما من یه اتلاع لحظی نیستن گنی نمیشه آب نمیفهمید اون تعداد من اذعان کنن سفرلو جاهم این فصل جاهم ازدعا شما شامل اونجا نمیشه که آب مباد اما انا من مثلا جاهم اونجا می دونید؟ میشه چی میگی؟ از چی میگی؟ از چی از یکی عرف عام که لحظی باشه یکی عرف خاص قانونی باشه دو تا دو تا تحیلی میشه یکی عرف عام این یک راه برس ن روشن شکل چیما راه دوبار برس بعد بود که کلام و فلسفه آمد وارد شد و ادبه بزرگان اصول مثل فخرازی و دیگران یا متکلم بودن یا پیدسی بودن و بزرگان و کلام بودن اینها دیگه جنبه های لحظی رو بررسی نکرد نه نیموندن تو جمعه های لفظی برسی اینو اینا آمدن همزمان دو بحث رو مطرح گردن به اصلاحات یکی بحث صغربی که اوائیم محرق نبود بعد یاد اصلا کجا نه با امر اجتماع پیدا بکنن؟ تا مثال سلاح ارز کردن خب مخصوبشون این بود که در مکان مخصوص نماز با قصد مطلقه چیز پیدا بکنن اجتماع پیدا از دید که نماز یک مقولاتی تفکر کرده. نماز یک مقوله از فرض مقوله دیگری اتهام وارد درسته، اتهام بذار و ولی من الان از کردم یواش یواش این بحث در اصول ما الان که تو اصول متأخر شیعه نگاه بکن میشه برای موافقی دیگه هم دیگه راستا تو بحث ائتمام نه بحث سهروی هم باز کردن، غیر از اون بحث سهروی نی که مثلا نماز باغت کجا با هم اتحاد پیدا می‌کنه؟ که هر عرض کردم مردم در مثل لباس میگه بله چون وقتشه رو سر رو گذاشت تا در لباس با هم اتحاد پیدا می‌کنه اما در مثل مصد مکان مصدی میگه فقط تو سجده اتحاد پیدا می‌کنه جایی که واو نماز بذاری بحث شایسه سن غباضی عوض شد دید بینید در بحث قدیم مثلا این بحث اصلا نبود کجا اتحاد پیدا می‌کنه کجا اتحاد پیدا می‌کنه امم دنبال یک فهم اورجی بود می فهم اورجی لا ترشد یعنی تو نماز تو مکاره خاصی نبخام نه به می‌ذارم از بخوام دیگه کار که اتحادشون انضمامیه تکیه انضمامیه یا عادیه خارج از خارج از دوامند در دنبال تعیین مصداق هم نبود این در نماز به روزوی شرده و خارج از نماز اما در دوست در واسه هر این روزوی برند در که حضور داخل میدونیم این که بخش میم این که همی که که آمی شو یه خیلی شوی و میشه خیلی که خیلی کرای نیشه خود در واسه بخش نکته ای داره در میان اهل سنت در شما نهیه در میان ما در در عبادت بله بر بل بل مورد بحث اصولم اینه که در خود رسانه این که شون رو فرقی و تغییر بودی که رسالت دلیل وارد شده و در صد چون چون رسانه دلیل وارد شده بحث این است که در رسانه دلیل نیامده و میدونم میدونه ایشون مخاطب خوی نخویی طبیعتا اینه یعنی طبیعت فهم قانونی اینه یا قانونی یا عرفی <تصفح> یعنی فهم ایشون داره فهم یعنی ایشون میگه بسید این که بگه لا تو خلاف المکادن مخصوب چرا؟ <تصفح> شرط نموده در در به حضیب من به قصر کنید اونیگه اصلا عرف وقت میگه اگر شابلت تو یا آقا چون زمینه قصی تصروف نکن این قصی بگه آشون بسیر تصروف در خارج از نموده وضو نعم این که خودسر بحث سر این قسمه این که شو می تقید می که خیلی در لسان دایی اونا ما میگه تو لسان نباشه ما با انتکازات میفهمیم همون همون هم که با انتکازات ده کار روش نه؟ نه حسن یک آزوشوان در تقنف آدین هست اون که عرب آدین بیا برنم افراد آدی. به افراد آدین بگید در زمین قصی تصرف نکن این صور آدین یکی <تصفح> بعض فلسلی بگید بگید بگید این چی میفهمه این میفهمه ای میفهم؟ توش نخواب یعنی توش غذا نخواب نشین توش غذا بکن نشین توش بساقی ایدی کن مبالسه ایش میگو کن نشین توش, توش آزو بگ <میدن> نه نکن میده میده چند وقت امسال مشکل وای قوای امسال اصلا متشکیل نیست که هرگز نگری آیا نداره که که هرگز نگری آیا حالا که نگری نگری که که چه مشکور قایل هم در اجتماع اما در تساروزه در آف در اینا اون هم همونطوره چه فرمو کنن اولا مشهور قایل برمی اصلا بقول های گروه جدیشون که مشهور قایل به اجتماع نه ام کنن مشکوره متقنم اولا مشکوره قدام که از اون شیقتهای اجتماع کرده که ایشون معتقل آی برو جهدی خوب به قصد که مشهور علماء خائل به اتحاد هست اجتماع هستن هست، به لحاظ مقام جلد اما به لحاظ مقام امتصال امتنایی نه مقام جلد در مقام جلد امت... اجتماعی هست <تصفح> یعنی سلاح جوه خودش قصد جوه خودش این که قائد به مشهور واقع به امتناد هست که که به امتناد شد واقعید متنظر به عزیزان میگم بحث اون امتحن حلالم الان بعد عرض میکنم اون تحلیل دیگری در خوب دقت بیام ببین چه می خرد اجازه اینو صاحب بعد ببین بعد نذارید پس تا اینج مطلع روشن شد که نحوه بحث این مذهبی چونه امروز مخاطب داد عرض میکنم چون دیروز تحقیق داشتیم در به نظام عبد مولا رفت من هم تان اینه که در طول این تاریخ 1400 ساله مسئله نماز از اهل صحابه مطرح شده نما در لباس قرصی یا مکان قرصی با این که عهد در لباس حریف حالا اصحاب ما نهی در عبادت گرفتن اما واقعش بین عهد سنت از اجتماع رو نهی نهی در چون عهد سنت ندارم لاتو تلق حریف ما داریم و اعتقاد بنده هم بنده نهی که در روایات اهل روید بین حیصل اش امتناعی بودن این ها در روایت علامه متأخر ماواله هزار و بیست عامه السلام الله علیه و داره که جاش اینجا نیست، باز در محل خودش ارزش که گفته که زمان رو که این بحث‌ها خلاصه لغوی بود، یه تحلیل عرفانی بود، یه تحلیل تقریبا میشه بگیم فلسفی یا کلامی که راه دنبال اتحاد بین آن و در اندازه‌ای هم که اتحاد خوب آمد خوب دقت بکنید نه اومد در روی طنطوری سال و عرف چه اون جایی را که قالب ترکیب اتحادی بودن خوب دقت کنید این نتیجه نهایی یعنی اینش شو شده اخیرا که دو بالا رفت و پایین آمد نتیجه نهاییش رو مخاطب نهایی مثلا نتیجه نهاییش این شد نتیجه نهاییش این شد, این شد که اگر عمل وحدانی شد ما در مقام تشریح نمیتونه در عمل وقدانی دو تا عنوان بگذاره آقای کوی از این را در مقابل این آمدن گفتن خیلی خوب عمل وقدانی این حل به نمیکنه نمیتونه بودن امر پس این سجد عمل واضده وقدان عمل ادوارده حقیقی در خارج. به تحبیرشان دو عنوان انتظام میشه عنوان صلافیت و قصیت به تحبیرشان از ما بکنیم انتظار نیست اعتبار، حالا اون بحث دیگریست که نمکن باردش که دو عنوان سلاتی و قصی هم انتظام نیست متحصید متأثل ما در تحریدی که آن در مسئله اجتماع دادن تحریدشون خلاصی این بود که شما به جای این بحث بیاییم اینو مطرح مدره بکنید که آیا حیثیاتی که عصد میشه در لسان دلیل حیثیات تقریدی هستن یا حیثیات تعلیمی بیدیم زاویه بعد از لغت و امتباه رفت به جای دیگه از کردن کرارن و مرارن. هر وقت خود حیثیت با عنوانها موضوع خوب که میشه تعلیدی هر وقت حیثیت موضوع واقعی نیست متحیص موضوع واقعی نیست میشه تعلیدی تحلید. مثلا اگر باید زرب بکش خوبه زرب با عنوان زرب خوب نیست زرب با عنوان تحلید. اونه که معروض خوبه تعذیبه نه الگان اما اگر گفت مثلا نماز خوبه نماز با حیثیت نمازی مثل این برزرگی احلاحبان امیدان صوفیه ما خدا رو و یقینی نماز میمخواهد بخونیم ما خضور به خدا همیشون خضور به خدا کردیم در حال بخضوری پس نماز میمخواهیم بخونیم این حیثیت رو تعلیمی گرفتن این حقیقت نماز اون خوزه انسانی که انسان راست میگه دروغ نگه، خیانت نکنه، کارهای سخیانه نکنه ما این را انجام میدیم. وقتی حرکت نماده، وقتی اجازه نماز بخونه. اینا همانا مثلا ارکان اساس و حیثیت تعلیلی گرفتن. وقتی قاعده اینه که مثلا هر جا خود رفت رو خود حیثیت این میشه تعلیلی. هر جا هو رفت رو متعیض حیثیت طریق ما برای متعیضه میشه حیثیت حیثیت تعلیلی از طرف دیگه یه قاعده گذاشتن که در احکام عقلی حیثیات تحلیلی هستن در احکام شرعی حیثیات تحلیلی هستن مگر یک جای خلاف قاعده بیده که در احکام شرعی لذا آمدن در جایی که بحث بکنن آمدن دنبال این بحث که ما در اعتبارات قانونی حیثیات ما تحلیلی نیستن که میبینیم اون متحیث بغدا نیست یا نه حیثیات ما تغییری هستن اگر تقییدیه شد مشکل ندازه که یک عمل باطن دوتون حیثیت دسته باشد به یک حیثیتش مهمونده ها باشد به یک حیثیتش باشه ها باشد پس آمدن بحث رو بگیدید چی سیر بحث عرض شد مثلا حیثیت آمدن تماما بحث رو این جمعه پس یک باید ترکیب اتحادی باشه. ترکیب در ازمامی به درد میخواید در ترکیب ارتحادی هم که حلال قضیه اینه که آیا هیتی یعنی آیا تعدد هیتی کافی یا تعدد متحیست میخوایی آیا ببینید فرمانی تعدد هیتی کافی نیست چون سجده این اون فشار میزنید اعتماد حالا جل از یک حقیقت واحده خارجی است. از این مقوله معینیه دو تا حیثیت بودن دو تا شیر میکنه یکی یکی دیگه لذا باید این خیزه یا دارای ملاک باشه یا مصرح باشه یا مصرحه نمیشه ولذا ایشان هم باید از راه دیگری ولذا نفاعج هم در خطابات ایشان فرق کرد ایشان اصلا آمد زد توی اجتماع نه از این لحاظ یک عمل وقدانی باشه دو هیضیات و عنوان انتزایی دو تا شیه این تعدد به اون عمل وحدت بخد. به وحدانی بودن ذره نمیزنه چون ذره نمیزنه دو تا عنوان ما بازم در مقام ملاکات ایشون رفتن رو مقام ملاکات این عمل واحدی اعتماد الالعن یا مصلحت داره یا مصلحت داره دیگه نسخه و تعدد هیضیات کافی نیست ایشون نرفت رو حیثیات نرفت رو مقام انشاء چون حرف کردیم مقام ملاکات داریم ملا، ملا، مقام حب و بغض داریم مقام اراده و چراحت ما یه تحلیل همیشه اراده کردیم این خیلی کارگوش در بحث و اصولی حکم یک مقام ملاکات یک مقام حب و بغض مقام اراده و چراحت بعد مقام جهل بعد مقام فعلیتی که ارسال رسول به انزال کتبه بعد مقام تنجزه که وصول اون کلبه بعد مقام امتصاد این هفت مقام رو در جهل هم در خوب همین در در باشه سه تا خط در جهل هسته مرحباً بعد از اونی که در وقت اجتماع مثل, مثل به نظر بود تو مقام جهل بود خوب دقیق یعنی سل لغلا تر سر با هم جهل نمیشه آقایی کجا بردن بردن, بردن مقام لاش قبل از جهل ایشون بردن رو مقام ملاد اون کسانی که بیشتر بحث می تو مسئله رو مقام شهر بود ببینید این خطور مسئله تحرید تاریخی، تحرید اصولی چه چهره عبر کرد چوبت در های مختلف رد که من دیروز مطرح کردم این بود که ما در واقع اگر خوب دفت مکنیم غیر از این بحث های لحظی یا این تهدوزهی سیگه از این دومی حربایی یه حربایی بدی نیست اما اینها یک ریشهی دیگری یاده این نیست ما به نظر ما تحریر مسئله اونی که مثلا ابن حرف سحمیده یا دیگران این کافی نیست این یک ریشه یا خورفی دیگری داشته که اون ریشه چون ارتکاز و خورف بوده توجه بهش نبود. اون رو به صورت قانونی و به صورت حقوقی این جورمت اصولی مثلا این جور رفت کردیم آیا در مقام جعل و تشریع ناظر به مقام انتصال هست یا نه این کار رو درست میکنه وقتی میگه سله میاد به صلاف خارجی شما نگاه میکنه لا تختب به قرصه خارجی نگاه می‌کنه. الان از دیگه که شما قالب اجتماع هستن سبه این که قالب اجتماع هستن همینه میگه مقام انتصال که به مقام هفتهن بود مقام انتصال با مقام جل اصلا کرد. مقام انتصال فقط لا فقط در اتیار حمله ناظر نیست مولا اون مقام آن به مقام ناظر نیست او کار نداره نماز شما کجا بکنید تو خصیب اون غیر خصیب میگه نماز بود. او کار نداره شما در زمینه رفت و کار میکنید میخوابین راه میبینین نماز میخورین اون کار این کارا نداره زنین. اینا اومدن این تفسیر رو مطرح کردن مقام امتثال صد درصد در شارع در است لذا اون کار نداره شما چجوری گوش میخاید یه گوش بدن پیاده بری میخواد بازار بری میخواد زنگ بزنی میخواید یک کسی بگیرین برای گوش بیاره خدا کار این کارا نداره زنین. تو مقام جت هیچ نظر به واقعی هر یکی از ارکان مقدمات در بابه اجتماع نه در بابه مقدمه واجب در بابه نظریه است تمامی ابواب در یک کنیم نکته اساسیش اینه که آیا توی مقام جن ناظر به مقام امتثال هست یا نه اگر تو مقام جن ناظر اون خب مقدمه شما واجبه چون وقتی به شما گوش بکنم حاضرن گوش خیرا میشه مقدمه گیر نمیشه پس ناظر بمقام میشه لذا اگر دو تا مقدمه مقدمه جایز، مقدمه حرا زنظرش از مقدمه حرا نه از مقدمه, مقدمه جایز بروی دو تا خیابان میره به طرف خستاقی یک خیابانه که پدر جغلی هیچ وقت توی یک خیابان نواشت از تو خیابان فاصلیه یه خیابانش را ندار وقتی میگه دروگوش به هر سوال آیا پدرت توش گفته از اون خیابان نرو اون مقدمه را انجام نداره که این که ابنه هر فهمیدن این نکته این بوده فهمهارفی اونا میگن آف اینه میفهمه وقتی پدر به انسان گفت به بچهش گفت برو نان بخر برو گوش بخر از اونا پدر جوده هیچ وقت حاضرست از این خیابان باشی این معناش اینه که از اون خیابان دیگه گوش از این خیابان میدون امکنی خودها رو گوش بخرد که کنم به در به دیگه اون رضا به نظر ما بحث ما قدر بحث اجتماع چون در بحث اجتماع هم کنید بحث میکنید تو مقام جل تغییر نکرده. این در مقام امتصال جمع کرده تو مقام جل سله موزن لاپسه آمودن تو مقام جل تقیید نیامده سر این که بحث اجتماع هم جدا کردن همینه به هم سه نهی در عباده تو مقام جل تقیید خورده لازو صلیف الحدیب تو مقام جعل تقیید خورده در اینجا اینه ابن هست میگه عرف رو سحن عمومیش تقییدی که در خارج همه چندشه مثل تقیید لفظیه یا بیجیم خوشن شد میگه فرموی خوده بیگه لازو صلیف الحدیب با در قرف یکی رو میفرنده تو مقام جعل تقیید داره او پهنشینه خب این چه میشینه هر تو. ما باید دیگیم نازل و مقام اینکسال باید باشه. اون هایون مهم هایونی که غالی به اینکس اجتماع هستن مثل فهدیل و حسول که غالی به اجتماع نقطه این اصلا مقام اینکسال در چه ها رفت بود رفتی کولا نبریم اون چه هسته بسید نماز بکنه اون نماز بکنه نماز بکنه خب همین خب اجازه بفرمه اجازه بفرمه اجازه بفرم. و بخش به نظر ما این مطلب مطلب درستیه یعنی خود این مطلب که آیا تو مقام جمع ناظر هست این بسه قانونیه بسه خوبی است. لیکن ریشه این بس که ناظر هست یا نه به همین مسئله عبدالعلا و نظام قانونیه ریشه کونجا هست ریشه رو من که درود تحقیل که از ابحاظی که شما زادیم ریشه در حقیقت اگر شما تفسیرتون از مثلا نصوص شریعت مثل رفت عبد و مولا باشه طبیعتا همینطور ناظر مقام انتصال هست اگر تفسیرتون قانونی باشه عمو که اینکه ابوز قوانین داره ناظر نیست مقام انتصال اون مقام انتصال خطاب قانونی قرارداد اون حل مشکل میکنه. زیر براش چیز دیگری. روشن شطه تلاش خوب دیگه پس ما آمدی از این راه مسئله رو تغییر که تغییر به نظر ما اینه یک اجازه بدید چه اشیه؟ چه اجازه؟ چه اشینه؟ کار ندار نیست. چه اشاین اینه که در نظام قانونی افراد شهروند به اصطلاح موسما مکلفی اینا افراد آزادیه فقط اون نظام رو باید انجام بدن. اما در نظام عبد فقط اون نظام نیست اون بغرینیه ع تمام وجودت این احتمالاست مورد مولا نه نداره نه چون وح... وقت نه واقعا این لا مشقوش این محدودیت تسابق داره نه بیکار بکنیم نه از لحاظ خطاب او از لحاظ خود مأمور محدودیت داره چرا چون میگه ولا سنت خطاب میراد خب اجازه بدید اجازه بدید اگر میدونه که مولاش راضی نیست از این خیابان بره احنا برس همینه لا لا لا برس همینه برس همین اجازه درستر درستر بدیم. من میگم اون ریش منشه این برس شده این است که در نظام عبدال مولا به تمام وجوده این این منشه این نقطه شده اما در کتاب قانونی مکنیست نظام رو بده قانون انجام بده اینکه مؤمن که ما خدای حقیقی مثل ماده زمانی کردن. مثلا جرد همین رو امثال یه طعنه دیگه رو زمانی کردن یه تو هم گفتن جهان در ما همه در دائم وجود نیست یه, انجام شد. یه شد اما در واقع این مفهومه طبیعی شما فهمیدین تا درگاهی سوال شما اینکه تا آن زمانی بودن زمان چرا تو زمان چه؟ زمانی زمانی کردی شما. چه زمانی چه زمانی نه چه زمان شما تو که جل در موجوده وقتی موضوع زنده شد و قشم نمیشه و وقتی موضوع زنده در چون موجوده اصلا بعض زمان میگانی در مقام اعتبار وجود داره اگه رو در مقام اعتبار موجوده بابا حضور شما لا اله الا چی کار چیکار درید؟ لا شما کلاوی رو ما الان یه بحث قانونی داریم. ما بحثمون اینه که اون شما اون که پول نه وجهه این چرا چون خدا اصلا شکارن از ما در موارس قانونی اعتباری همون در اعتبارات تو اقلالیس مطرح میکنیم میگیم شارع هم به همون لغت اغ... لغت و فهم اقلالیس باقیش هم نه کجا کجا خودمشون کجا خودمشون حرفت چی ببین ببینی ببینی چه خودش داره خبه موجود و فکر و خودش که شد در مقام امتصال هم حضور داره لا لا. بحث حضور مقام امتصال نیست. بحث اینه که وقتی میگه نام بخر نگاه میکنه به کیفیت ایفیت امتصال او یا نه در همین تغییر اما به افراد این دان اون دان تغییر افراد اگر شهر در مقام امتصال هم حضور آه. آه، یا نه، نه. چرا دشتورش نداره؟ ما خواب یه نکتهی دیگه داریا نداره چرا؟ خب این یه تحلیل یه تحلیل لابوضیت اقلی یه تحلیل خیلی خوب سلام این کلام آنو یه بود که لحظ که تاوری ها میگفتن من معتقدم که هیچ کنان دو تحلیل درست نیست اون حکم اقلی هم که در حقیقت میگن آیان این ویشه در یک درک اجتماعی داره نه احکام عقلی و لابودیات عقلیه اگر در جامعی نظام یعنی ما روایات و آیات و شریعت رو تفسیر بکنیم به همونی که در جامعه بوده همون رابطه که بین عبدالمولا بوده در رابطه عبدالمولا کار به لابودیه و عقلی نیم اصلا عرض به تمام وجوده احملیت مولاست این تمامیت وجود خای رفایی تاثیر نیست داره به خلاف اونجایی که مکلت به تمام وجود احملیت نباشه بحث نظام قانونی یک نظامه بحث نظام عبدالمولا یک نظامه من معتقد در این بحث ها که درست شد ریشه تفکرات تفکرات عبدالمولا بود در تفکرات عبدالمولا همینطوره یعنی واقعیت داره چرا؟ چون ام فقط مکلص به تقریب نیزادشون که دیگریه نمی کنه بیاد بگه من تصمیم میگیرم که گوشی کشوری ببرم. می نه این مک نیما لا اصلا مک نیست چه در مقابل خدا مک چه چیکار کنه خداو بحث اصلا هیچ بحث عبد مولا ما با خدا نداریم هی بابا پس اصلا ما ادمی نیم که عادی کشی واژه داریم ادم با ما نسبت به خدا نسبت ادم داریم نه نسبت آن چی نیستیم آقا اصلا بحث عبد و مولا و هر کدوم مربوط و ظلم و من اصلا یک بنتی با موضوعه صلوبه تو با اصلا با خدا بحث هر کی نگریشیدی که نه اجازه ده بحث تحلیل قانونی بحث این است که اگر یک نظام قانونی رو یا یعنی یک طبیعی دو نه ممکن دو جور تفسیر بکنیم یعنی ما بحثون اینه که آیات مبارکه قرآن دو رو دو جور میشه تفسیر کرد این خلاصه بحث اینه اقیم رو دو جور میشه تفسیر کرد یه چطور مثلا یک شخصی در دخالتش یه مجرای میشن به دادن. چطور یک شخصی صد تا برده شد یه عبدش جمع بکنه بگه شما صد نفر هرکومتون بدین خاک بیارین شما بدین شما بدین این ست رو جمع کردن گفته به شما یا عدیدی مثلا خاصی یاین این مثل که شما بیار یا بینامن و این وقتیش میکنه یعنی ما در هر وقتی مثلا در زمان رسول الله چون جامعه جامعه عبدال مولا بود ولذا قائل به اطلاع میشه یا یا اللذین یا زیر یا هم یا برد یه تصویری دیگه برای این مخصوص شریعت نه صریح جامعه جامعه عبدالمولاسته اون که نیستین اما تعبیر تعبیر قانونیه یعنی خود خداوند متعال در آیات مبارکه یا پیغمبر اکرم سعی کردن صحبتشون یک نظام قانونی باشه نه نظام عبدالمولا این یه تعبیر یه تعبیر شما میگین اگر ما اونی که بیشتر فهمیدیم در اوائل بیشتر فهم عبدالمولا البته عرض کردم بعد معصفان متکلمین در درچه از و بعد فلسفه سعی کردن بحث‌ها رو بحث عقلی جلو بدن این منکر که ما نیستیم که لکن بنظر ما این تحلیل واقعی نیست تحلیل واقعی در این مسئله اون نظام اجتماعی است اون واقعیت جامعه است لحظی هم نیست که ابن حد فهمیده لحظی به این معنا که پشتوانه مجموعه ای از شواهد لفظی و اجتماعی و نظامات خاتم بلو به این من را من. این در حقیقت یک نقطه ماورایی داره که بحث لاغودیت عقیلی نیست اون نقطه اینه اگر وقتی مکلف خودش رو مملوک مولا ببینه خواهی نخواهی یک آثار خاصی بارز میشه دو مملوک مولانی نه. نهیم که ما ملک خود اصلا مسئله مدییت و به خدا مطرح نیست که ساله نگه موضوعه به سر تفسیر خطاباتی ای این یا الگی نامنی رو ما یک نظام قانونی از شر میاریم یک دقامت خاص به از اون اصلا بیران مهم در نظام قانونی ناظر مقام امتصال نزدید. نیست نگیرم نیست تو مقام امرش از این از یعنی تو مقام جمع فقط میاد حیثیت رو میبینه و لذا اگر ما نظام قانونی به فهم اجزارش وقت بودش نیست حقم با که در مقام امتصال تماما مربوطه به مکلده بگیرد مقام جد جدا مقام امتصال از کنید مناسات و غفت و بغض و که را به مولا بر بگیرده به مولا بر مرحله فریقیت به امسال برسول هم شنه مولاست مرحله وصول شنه هر هم مولا هم عرض مکلف هم بود نزاعتش میگه فصل فصلی مرحله وصول بعد از تکام تکان به خودش نگاه میکنه به اجله نگاه میکنه سوالی جواب این چه جور بحث فصلی مرحله امتثال هم در است و شد این حتی مرحله فالو خودش خاص مولا یک مرحله مشترک یک مرحله هم خاصه این تو نظام قانون قانونی دوست چی ده فندم ليه كده صلى الله على